روز وصل دوستاران یاد باد یاد بادن روزگاران یاد باد کامم از تلخی غم چون زهر گشت بانگ نوش شاد یاد باد گرچه یاران فارغند از یاد من از منیشان را هزاران یاد باد مبتلا گشتم در این بند و بلا کوشش آن حق گذاران یاد باد گرچه صد رود است در چشم مدام زند رود باغ کاران یاد باد راز حافظ بعد از این نا گفته ماند ای دریغا راز داران یاد باد